افسونه افسانه افسانهها ها داستان هایی هستند که نسل به نسل و سینه به سینه حکایت شدند تا پیامی را به دیگران انتقال دهند افسانه ها حتی اگر تخیلی باشند در دلشان پند و اندرزی دارند که میتواند به یادگیری یک مهارت یا یک دانش یا یک رفتار انسانی منتهی شود در این برنامه میخواهیم یکی از افسانه های کشور عزیزمان ایران را برایتان روایت کنیم افسانه ی گاوه پیشانی سفید که از کتاب افثانه های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده است. یکی بود، یکی نبود، سالها پیش در یکی از روستاهای کشورمون زن و مردی با هم زندگی میکردند که زندگی خوب و شیرینی داشتند. شیرینی زندگی اونا با تولد پسرشون بیشتر شد مرد که رحمت نام داشت اسم پسرشون رو گرگین گذاشت چند روز از تولد گرگین نگذشته بود که مادر گرگین مریض شد و از دنیا رفت و رحمت برای گرگین هم پدر شد و هم مادر خدا سخت، به سخت سخته به پیر قنبر مرد که بشینه خونه بچه داری کنه آخه زندگی یه روز دو روزه بچه خونه میخواد، زندگی میخواد، می آب و دون میخواد رحمت بیا چی چه خاطره. اینو این بچه‌رو بغل نکن رحمت، زغلی میشه. چی کارش کنم شوکت؟ می‌بینی که داره گریه می‌کنه. بذارش رو زمین برای جفتتون بهتره. بذارش رو زمین ببین آروم میشه یا نه. ها؟ بزارمش رو زمین؟ خب باش بیا. من ماندع، ببینم آروم میشه؟ هر حرف, حرف خودشه. اصلا فکر نمی‌کنه ما دو پیرم بیشتر از اون پاره کردیم و سر به گرم گارو چشیدی. می‌گم راست میگی آروم شد انگار. چه عجب بالاخره یه بارم به ما حق دادی بیا بشین اینجا اصلا کارت داره بیا او بفرما چی شده شکت جان رحمت جان جان برادر من عزیز من م. تو تا که میخوای به این زندگی ادامه بدی؟ م. هیچ حواست به خودت و زندگیت هست؟ هم زندگیم چشه؟ تو بگو چش نیست نه زنی نه پخت و بزی نه مهر و محبتی تو زندگی من گرگین شکت جان گرگین جای خودش ولی این خونه زن میخواد یه زن که چشم راهت بمونه تا بیای خونه که تنور این خونه رو گرم نگرداره که اجاق این خونه رو روشن نگرداره یه زن که دلتنگت بشوده میگوشت قصه آشقونه بخونه ای بابا کار من از این حرفا گذشته خواهد کی گفته؟ مگه تو چند سالته؟ تو که از مشباقه پیرتر نیستی که سر پیری دو روز بعد از شیلوم زنش رفت زنگره؟ اون مشباقه به من چه؟ تو یه ساله که زن تو از دست دادی؟ خدا رحمتش کنه زن خیلی خوبیم بود اما چیکار میشه کرد؟ عمرش به دنیا نبود قرار نیست تو بعد از اون تنها بمونی و سرتو با بزرگ کردن گرگین گرم کنی که بله چشم من بهش فکر میکنم فکر. بی فکر. ما خودم دختر خوب برات سوراق دارم کی دختر مشرم‌وزو پارسال شوهرش به رحمت خدا رفت می‌شناسیش والا پدر مادرش رو می‌شناسم خونی با خوبی هست ها چی می‌گی مبارکه آه. خب نمیدونم نمیدونم یعنی چی مبارکه من Oh, ماشا الله مردای اون روز شوکت همراه رحمت به خاستگاری گلی دختر مشرمیزون رفت و چند روز بعد هم مراسم عقد و عروسی رحمت و گلی برگزار شد و گلی به خونه رحمت رفت یکی دو سال اول همه چیز خوب بود اما همین که قادر پسر گلی متولد شد گلی از این رو به اون رو شد و دیگه به گرگین توجهی نمیکرد گرگین گرگین هیچ معلوماست کجا زود باش تنور رو روشن کن یالا. ای چی میگی گلی؟ مگه گرگین چند سالشه که تنور رو روشن کنه؟ اگه دلت نمیخواد پسر کاکل زرید دست به سیاسفید بزنه خودت برو تنور رو روشن کن. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چطور انتظار داری اون بچه تنور روشن کنه؟ به من ربطی نداره. تو هم به من یکی بده نکن. اگه گورگین پسرته، قادرم پسرته. به منم ربطی نداره. من هر به یه اندازه دوست دارم پس به که اینجا وایسیو با من بگو مگو کنی زود باش برو تنور رو روشن کن الان بلغیس میاد اینجا نوم بپزه باشه خب باشه چرا داد میزنی برو الان تنور رو روشن میکنم تا گذشت قادر بزرگ شد و گرگین بزرگتر حالا دیگه رحمت تبدیل به مرد پی و از کار ای شده بود و گلی بیشتر از همیشه به گرگین کم لطفی میکرد کار گرگین شده بود چوپانی و کار قادر شده بود خوردن و خوابیدن. یه روز که گرگین گله رو به صحرا برده بود گرسنه شد و تکنانی که در خورجین داشت بیرون آورد تا اونو بخوره اما همین که خواست اونو بخوره دید انقدر سفتی که قابل خوردن نیست. گرگین هم با عصبانیت تک نانو روی زمین انداخت. خدایا چقدر گرسنه. تازه سر زوره. من چطور میتونم این گرسنگی و تو شدت تحمل کنم؟ مرخ. چی شده گرگی؟ چرا اینقدر عصبونی و نورهتی؟ تو... تو... تو تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ ما. نه ترس مرد نه پرسیدم تو کی هستی چرا من نمیتونم ببینمه من درست روبرو دیست دادم ها. روبرو مم. نه نه هیچکس نیست تو کی هستی ای بابا ما. منم گاو پیشونی سفید چی؟ گاب من یه گابم حرف میزنه ما. من نیتونم حرف بزنم ای دیگه دانی حسنم و سهر میبری گرگی میگی چرا عصبانی هستی یا نه تو, تو چطوری میتونی حرف بزنی ما به این کاری نداشته باش بگو چرا عصبی و ناراحتی من من از دست زنبابام ناراحتم ما... اون اون یه تیکنیونه خوشکو ببین اون سم من از غذای خونه است. ما... زنبابام همه یه ها رو به قادر به سر خودش میده میدونم که اون برادرمه من نباید بهش حسودی کنم اما خب منم تو خونه سمی دارم خب چرا به پدرت نمیگی؟ دلم نمیاد پدرم رو ناراحت کنم خب مریضه، پیره م. نمیخوام با حرفام و ناراحتش کنم نه خب من میتونم کمکت کنم آه. چطوری؟ م. بیا، بیا شاخهای منو تمیز بشون روی هر شاخم یه روزنه هست از یکی از روزنه ها اصل بیرونید از اون یکی کره این قد کره و اصل بخور تو زیر تو راست میگی؟ ما؟ معلومه که راست میگم زود باش بیا شاخمو بشور تا کسی نایمده بیا دیگه آه. اه در ذهب این رازو نباید به کسی بگیا وگرنه برامو دردسر سر میشه باشه پیشونی پیشو میسرید گالت راحت باشه گذبون تو ما؟ <تصفيق> به بعد کار گرگین این شده بود که زهرا یه دل سیرکر و اصل میخورد و هر روز رنگ و روش بهتر و بهتر میشد از طرفی قادر با اینکه بهترین خوراکی ها رو میخورد ولی زرد رنگ و افسرده میشد بدبخ به من میگرد بی به من میگرد بی به من میگرد چی شده مادم چی شده؟ مم. یعنی تو نمیدونی چی شده قادر؟ نه من دوامن نمیدونم نمیدونی چون عقل تو از دست دادی چون چشاتو باز نمی کنی ببینی دور بره چه خبره خب شما به من بگیم ببینم دور و برم چه خبره من هر وقت غذا درست میکنم گل غذا رو به تو میدم بهترین خوراکی ها رو به تو میدم نمیذارم گرگین لب به اون غذا بزنه اون وقت رو بین تو چه رنگ روی داری اون چه رنگ رویداری؟ ای بابا این که نمیدونید <تصفح> ما نگفتم عقلت از دست دادی یعنی چی که چیزی نیست به خودت بیا قادر یک کاسه زیر نیم کاسه گرجینه چه کاسه ای؟ من به گرگین شک دارم معنی نداره وقتی یه نفر از صبح تا شب یه لقمه نون خوش میخوره اینقدر سرخ و سفید و قبراق سر حال باشه خب اس دیگه نه خیر داره یه چیزی رو از ما پنهون میکنه اصلا چی این چیزیه که تو باید ازش سر در بیاری من؟ بله تو قرار نیست تو خونه فقط بخوری یا بخوابی باید بری دنبال گرگین سر از کارش در بیاری چه کاری؟ صبح که گرگین با گله میره صحرا باید دنبالش را بیافتی بری ببینی چی میخوره انقدر سرخ و سفید میشه ای بابا کیال داره سر صبح زود بیداشه به سهرا حرف نباشه؟ همین که گفتم فردا صبح زود از خواب بیدار میشی را میافتی دنبال گرگین و باش میری صحرا <تصفيق> چشم از گرگین بر نمیداری تا بفهمی چی میخوره چی کار میکنه که از گرستنگی زفنه نمیکنه فهمیدی؟ آه. دنبال گرگین به راه افتاد و با اون به صحرا رفت زهر که شد قادر بخچه قضاشو باز کرد و شروع کرد به غذا خوردن اما چشم از گرگینه بر نمی داشت مراقب بود ببینه گرگین چه غذایی میخوره. بعد هم که دید گرگین وارد گله شد و رفت طرف گاو پیشونی سفید و شاخهای گاو و شست و از روزنه های شاخ گاو کره و اصل بیرون آورد و خورد زود باش رخت خوابتو بنداز بگیر به خواب رحمت مثل جغ نشسته تو این اتاق به در دیوار نگاه میکنی که چی بشه؟ تو چیکار به کار بکار من داری گلی تو بگیر به لازم نکرده تو به فکر خواب من باشی من بعد رخت لباسای قادر رو بشورم بخواب خواب با من یکی بدو نکن به ای بابا تو چرا اینجوری شدی؟ چقدر قر میزنی؟ باشه باشه زن باشه بگیر به خواب دیگه. اه. اه. قادر قادر ها ها کفت لانبونی گرفتی؟ یه ببینم بدا نمیخوای بگه امروز تو صحرا چی دیدی؟ ایده یعنی گه ایده مزلوسه نهی فهمه ما بس که عقلی مگه تو امروز با گورگین نرفتی سحرا ببینی چی میخوره آه آه چرا چرا رفتم آه خب بنار ببینم چی دیدی؟ بادا من که مشغول خوردن و شده بودم چیزم که گرگین رفت میونه گله گرگ بعدم شاخای گف پیشون سفی رو شد آخر سلم از توی شاخای گف کره و اصل درمه خورده مطمئنی آره جب چشه خواهم دیدم ای گرگین موزی باشه یک گاو پیشونی سفیدی نشونت بدم که اون سرش ناپیدا باش آقا گرکین منظورت چما؟ منظورمو خیلی زود میفهمی آقا قاده. راز گرگین شده بود رفت سراغ حکیم و به اون چشم روشنی گیرون قیمتی داد و گفت که من خودمو به مریضی میزنم اگه شوهرم فرستاد دنبال تو تو بالای سرم اومدی بگو که تنها راه علاجش اینه که گوشت گاوه پیشونی سفید بخوری طبیب هم قبول کرد و منتظر اجرای نقشه شد <تصفيق> ای بابا رحمد رحمد باز این طبیب آروم باش گلی جان آروم باش قادر رفته پش حالا میرسه می برای میرم رحمد درم جده گوره آتیش ای گور بگورشی طبیب چرا نمیاد؟ طبیب چی ها؟ آمدن جمعه طبیب بفرما بفرما اینجاب جا... طبیب نه جمعه طبیب یام مادرم دستم به دامن جناب تابی زنم داره از دستم میره اهم نه چی شده خیر زنم جناب تابی دارم چه کوراتی به دارم میسوزم شادی دام داری زرآ زرآ زرآ دهانه تر خب دست زار زنم چی شده جناب تابی اوه یه یه یه یه یه یه خبر خوبی ندارم شده نه خدا کنه تو گلت گاوه پیشونی سفید داشته باشی. گاوه با پیشونی سفید آره آره آره آره دارم آره. دارم, دارم. دارم. دیگه مشکلی نیست, نیست؟ مادرم <تصفح> چشم شده <تصفح> <تصفح> جنابت طبی ام... مادرت طب زرد داره طب زرد؟ درمون این مریضی هم فقط خودن گوشت گاب پیشونی سفیده, پیشو سفیده. آه. آه. باید گاب رو قربونی کنین و دلو جیگرش رو کباب کنین بدین به مادر, مادر تا خوب بشه درست که دلو جیگر گاب پیشونی سفیده خور خوب میشه خود آقایی رو کنین گلیتونست نقشش رو عملی کنه اما از طرفی گرگین که از این ماجرا خبر شده بود رفت و همه چیز به گاوه پیشونی سفید گفت گاوه پیشونی سفیدم نقشهی کشید و در نهایت تصمیم گرفت به اتفاق گرگین فرار کنن و راهی نیزار بشن <تصفيق> به دیگه. خسته شدم با... از, نفس افتادم. از نفس افتادم منم خسته شدم گرگی فکر نمی کنم دیگه تو این نیزار دست کسی بهمون همون برسه اینجارو تو از کجا پیدا کردی؟ دیگاه به پیشونی با... من تو این نیزار به دنیا آمدم قبل از این که وارد گله پدرت بشم جای دنجیه دست کسی هم بهمون همون نمی مه... امین طوره حالا برو چند تنده بچین و بیار بریشی از من چیزی بپرسی باشه چند تا بچینم؟ چهار تا باشه باشه مه... مه... آه یه گوش این نیا رو تر و تمیز کن و شاغای اضافیشو بزن باشه <تصفيق> <تصفيق> نه از شاخه تمیز بفهم ما... حالا اونا رو ببند به کمرت آه؟ برای چی؟ برای این هر وقت با من کاری داشتی با صدای بلند نی بزنی و من خودم به تو برسونم مگه ما... تو میخوای از من جدا بشی ما... آره من تو که نمیتونیم با هم زندگی کنیم دیگه اما... اما من کجا باید دارم؟ من چی کار بکنم؟ اه، اه، برو به جنگلی که در فرسخیه این نیداره برو تقدیر تو اونجا پیدا کن چه تقدیری؟ ما... به جایی که این همه سوال کنی را برو به طرف جنگل هر وقتم که با من کاری داشتی نی بزن تا من به کمکت بیام چطوری؟ برو دیگه برو باشه من رفتم برو ما... ما... گرگین به پیشنهاد گاو پیشونی سفید راهی جنگل شد اون جنگل ملک پادشاه بود که به تنها دخترش روشنک بخشیده بود روشنک هر از گاهی با دوستاش به جنگل میرفت و در آنجا گردش میکرد و دوباره به قصر برمیگشت اون روزم روشنک همراه دوستاش در جنگل گردش میکرد که گرگین صداشو شنید و از ترس خودشو به بالای درختی رسوند وای نمی نمیدیم چه استخوبی دارم وقتی باید این جنگل میشم اصلا بانیشاد میشم این جنگل آرومش عجیبی داره این جنگل واقعا قشنگ و آروم روشنه تو چقدر خوشبختی که پدرت همچین جاییو بهت هدیه داده سفرا تو برای خودت رویایی نداری؟ چرا دارم؟ رویام اینه که یه روز با یه شاهزاده ازدواج کنم تو چی؟ اه خب من رویام اینه که با اونی که دوستش دارم ازدواج کنم تو این همه خاستگاره خوب سرشناس داری روشنک چرا با یکیشون ازدواج نمی کنیم برای اینکه تالا عاشق هیچ کدومشون نشدم یعنی با هیچ کدومشون دلم نلرزیده ولی باید حواست به سن و سالت هم باشه ام. تو دیگه بزرگ شدی اگه از بین این همه خواستگار یکیشونو انتخاب نکنی اون وقت جناب پادشاه مجبور میشه خودش یه نفر رو به همسری انتخاب کنه چیکار کار کنم؟ دست خودم می سفران میتونی من این چی بودن افتادن رو سرم فوی خدایا چه زردالوهای از درخت افتادن مگه این درخت آ آه... چی شد روشنک روشنک روشنک به چی نگاه میکنی ایوای آه... ای وای ای او آه... آه... پسر کی بالا ای درخت؟ روشنک چرا خوشکت زده روشنک روشن روشنک؟, آه... روشنک. اه... روشنک. روشنک با دیدن گرگین که از ترس روی درخت فرار کرده بود دل بسته اون شد و از خال رفت دوستاش اونو سوار اسب کردن و به قصر بردن از اون روز به بعدم خاستگارای زیادی روشنک و از پادشاه خاستگاری کردند. اما روشنک به همشون جواب منفی داد از تو تعجب میکنم روشنک هیچ دختری و اندازه تو خواست نداره چرا به یکی از اونها جواب مثبت نمیدی؟ من به هیچ کدومشون علاقه ای ندارم پدر اونا جوانهای معقول و صاحب نامیان میتونن تو رو خوشبخت کنن تو بله رو بگو علاقم کم کم به وجود میاد نه پدر من باید به کسی بله بگم که واقعا دوستش دارم آه. آه. چرا آه میکشی؟ یاد خوابی افتادم که دیشب دیدم چه خوابی؟ خواب دیدم یه صدایی به هم گفت که کمسر آینده من تو جنگل خودمو روی یه درخت زندگی میکنه همسر تو روی درخ اینا همه تباهم دخترم نمیدونم شاید توهم باشه پدر اما دلم میگه این خواب یه تعبیر خوب داره دلم میگه باید اون جنگل خوب بگردیم شاید شاید واقعا یه نفر تو اون جنگل نه نه نه این ممکن نیست هیچکس حق نداره بدون اجازه من پاشو تو اون جنگل بذاره. چرا عصبانی میشین از عصبانی میشم چون هیچ کس حق نداره وارد جنگل تو بشه. ما که نمیدونیم واقعا کسی تو اون جنگل هست یا نه؟ پس دلیلی نداره که شما عصبانی بشین اگر بود چی؟ نکنه انتظار داری اجازه بدم تو با یه پسر بی اصل و نصب ازدواج کنی؟ این چه حرفیه پدر؟ معلومه که نه. خب، درباره چنین خوابهای نگران کننده با من حرف نزن راشنگ. چه از روشنک حقایقی یا که تو دلش بود به پدرش گفت حالا پادشاه هم دوچاره تردید شده بود که نکنه واقعا یه نفر در جنگل هست که روشنک خوابش رو دیدی به همین دلیلم به سربازاش دستور داد تا به جنگل برن و جنگل رو وارسی کنن طولی نکشید که سربازای پادشاه گرگین رو در جنگل پیدا کردن و اونو به قصر بردن ببینم جوون. نگفتی اسمت چیه و تو جنگل دختر من چی کردی؟ اسم من گرگینه جناب پادشاه منو ببخشید که بدون اجازه وارد اون جنگل شدم باور کنین من نمی متعلق به دختر شماست میدونی مجازات کسی که بی اجازه وارد اون جنگل میشه چیه؟ نه نمی دونم. اما چون اشتباهی مرتکب شدم خودم مستوجه به هر مجازاتی می اهل احل کجایی؟ پدر و مادرت اهل یکی از روستای نزدیک نیزارم. مادرم از دنیا رفته، پدرم هم کشاورزه چند روزی که تو اون جنگل زندگی میکنی؟ سه روزه باور کن من هیچ مزاحمتی برای دختر شما همراهانش نداشتم اصلاً،, اصلا من نمیدونستم اون دختر شماست قسم میخورم جناب پادشاه. با این گناه بزرگی مرتکب شدی که بی اجازه پا تو اون جنگل گذاشتی اما حرفتو باور میکنم همینجا منتظر بمون تا من برگردم بیداری روشنک بله پدر. من گرگین دیدم گرگین همون پسری که تو جنگله و روی درخت زندگی میکنه اسمش گرگینه آره اون الان در سرسرای قصره خب پسر خوب و عاقلی به نظر میاد. قد و بالا و هیکل ورزیده‌ای هم داره. خب اومدم بهت بگم که مهر اون پسر به دلم نشسته. راست میگین پدر؟ داره. برای همین اومدم بهت بگم اگر موافقی مراسم عروسیتون رو برگزار کنیم. خب من من نمیدونم چی بگم پدر. <تصفيق> سکوت علامت رزاست روشنک خانم <تصفيق> مبارکه پادشاه که متوجه شده بود روشنک به گرگین علاقه من شده پیش گرگین رفت و ماجرا رو براش تعریف کرد گرگین هم که به روشنک علاقه من شده بود از پیشنهاد پادشاه استقبال کرد پادشاه هم دستور داد سور و سات عروسی گرگین و روشنک در قصر برگزار بشه باورم نمیشه روشنک خانم باورم نمیشه قراره همسر من بشین و یه عمر کنار من زندگی کنی منم باورم نمیشه گرگی از اون روزی که تو رو بالای درخت دیدم به دل بستم از اون روز به بعد همین آرزوم این بود که یه بار دیگه تو رو ببینم چیه گرگی؟ با اینکه که ادعا میکنی خوشحالی اما انگار انگار کمی یه گرانی چیزی شده؟ نه هم میدونی روزش اصیص من یه آرزو دارم خب دلم میخواد دلم میخواد پدرم هم تو مراسم عروسی ما باشه ام. این که کاری نداره برو خونتونو پدرت سمو خودت بیار نمیتونم چرا حکایتش مفصله دلم نمیخواد زن با بابام بفهمه من کجا و قراره با کی ازدواج کنم چون شک ندارم برای زندگیمون دردسر ساز میشه میخوای یکی از سربازای پدرم رو بفرستم دنبال پدری؟ نه نه اون وقت بیشتر شک میکنه خدایو چه کار کنم؟ ها، فهمیدم چی من یه نی دارم که اگه اونو بنوازم یه گاو پیشونی سفید اینجا ظاهر میشه و منو به آرزو میرسونه داری از رویات میگی گرگی؟ نه باور کن راست میگم اگه راست میگی، نی بزن ببینم اون گاوی که میگی ظاهر میشه یا نه؟ باشه، هم یادن <تصفح> سلام شایداده خانم سلام گرگی سلام من فکر نمی که شما اینجا حاضر بشید این قرار بین من و گرگی بود چی شده گرگی؟ از من چی می قرار من رو روشنک با هم عروسی کنیم ما... دلم میخواد پدرم هم تو این مراسم باشه ولی خب نمیدونم چطور میتونم این خبر رو بهش بدم من تو رو ظاهر کردم که این آرزم رو براورده مو باشه باشه حتما. یعنی ب... یعنی پدر گرگین خود به خود اینجا ظاهر میشه ما بله جازات خانوم بله من میرم و بعد از من پدر گرگین در کنار شما حاضر میشه ممنونم پیشونی سفید. دست ممنونم ما... <تصفي> بعد رحمت پدر گرگین کنار گرگین و روشنک ظاهر شد پادشاه برای عروسی روشنک و گرگین هفت شب و هفت روز جشن گرفت همه شادی کردن و پای کوبی روز هفتم مراسم عروسی برگزار شد و گرگین و روشنک زندگی خوبی و با هم شروع کردند هم از افسانه گاوه پیشانی سفید که از کتاب افسانه های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اختباس شده و به ما این درس را می دهد که اگر قلب کسی با خدا باشد هیچ دشمنی نمیتواند بر او و زندگیش قلبه کند افسانه گاو پیشانی سفید تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا محروخ افزلی، ماندانا محسنی، مهدی تهماسبی، نوشین حسنزاده، محمد یگانه، امیر فرهانیان، محمد رضا قلمبر، نورالدین جبادیان، نگین خاج نصیر سیما خوشچشم احمد گنجی موسیقی موسیقی موسیقی کارگردان ایوب آقاخانی افکتور نازنین حسن‌پور صدابردار بردار حیدر صفدری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افزانه ها رنگی از زندگیت افسانه زندگیتون دلنشین و مانا تا افزانه دیگر به